اللهم ما شاء الله ولا حول بسم الله الرحمن الرحيم يا احمد لو اهل السماء والارض ویسو مصیام اهل اهل السماع و, و الارض و تاوالتعام مثل الملائکه و لیس لباس الاری و لبس لباس الاری سم ارافی قلبهی من حب الدنیا زردا سم او سمعتها سم سمعتها سمعتها او رعاستها او حلیتها او زینتها لا یحابرنی فی داری تیمی لا یجابرنی فی داری من غلبهی محبتی و علیک السلام و رحمتی بسم الله الرحمن الرحیم آثار عبادت با اخلاص در دل و قلب انسان جمع میشه نتیجه تحذیب و تزکیه باطن انسانه رشد معرفت انسان پیدا شدن صفات خوب ایناست اگر انسان درست اطاعت فرمان بکنه و امرو نهی خدا رو با اخلاص انجام بده از اون ظلم و که اکثر مردم مرتکب میشن و به جای که محبت رو بدن به خدا میدن به دنیا از این ظلم نجات خدا میکنه فرا شد محبت و بغض دو تا از نعمت‌های خدا باشه هم محبت و هم بغض محبت انسان باید به احساسی بده بغض را هم به احساسی اینا انسان لازم و ضروری است تا هر کدوم جای مخصوصی داره بلج هم محبت میدن به یزید ابن ماویه بغض میدن به امام حسین از اینا زیادند در ابن سعود کتاب نوشتن به نام امیر المؤمنین یزید مدارس درست درست درس بیدن یه اون مقداری که ما تو سر یزید میزنیم اونها میبننش بالا صفات خوب کارهای خوب شخصیت بالا میدن بهش بده. اما خدا بسی چشم و گوش و دست و نعمته به انسان میده دستور میده که اینا رو در جای خودش خرج کن اگر بیراه خرج کنی مسئولی بغض و محبت هم خودت نعمت خداست آدم باید چیزها و عده رو دوست داشته باشه با این محبت و چیزها و عده رو گشمن داشته باشه بدش بیاد اگر انسان با عکس بکنه هم ظلم کرده هم خیانت کرده و در برابر نعمت خدا مسئوله اولین موردی که باید محبت تعلق بگیری بهش ذات اقدس فرپردگار متعاله چون همه چیز رو او به ما داده حتی خود محبت رو هم او داده هستی که ما مال اوست قدرت من علم من پا دست اوش هر چی دینی مال اوست برابرین عقل انسان میگه اول باید بدی با او چون اگر نمیداد هیچی نداشتی برابرین او استحقاق محبتی داره که منحسره به فرد عالیترین رتبه محبت رو با بدیم خدا قهران عالی ترین رتبه بغض و کینه رو باید بدیم به دشمنان خدا طبیلیسته دشمنان خدا انسان ها رو از رفتن به طرف خدا من میکنن، جلو گیری میکنن درابر این استحقاق بغض و کینه و نفرین و لعنت دارن آدلانش اینه حالا ما به عکس بکنیم ظلم کردیم نعمت رو در غیر موردش مصرف کردیم حالا ما بیاییم به جای محبت خدا مثلا بریم اشک و محبت پول و پست و مقام و این چیزا رو تو دلمون جا کنیم خب این ظلم بزرگ دنیا رو فاسد میکنیم چون همه اینه داشته باشن نتیجه ای میشه که سر رسیدن به دنیا و پول و پست دعواشون میشه همگری میکشن این شکلی میشه بله. اون مرتبه اول از محبت آثار و خواصی داره اگر انسان راست بگه حد اکثر محبت به خدا داده باشه طبیعی که حد اکثر اطاعت فرمان و بندگی خدا رو خواهد داشته این آدم دیگه دنبال چیزا که دیگران که محبت به خدا ندادن و همه رو دادن به دنیا دنبال اونا نیستن دیگه پول خرجه میکنه برای فست و مبام ریاست اونه شب و روز خواب هم پست و مقام خواب می روزم فعالیت می‌کنن، روزنامه قلم، پول، فکر پیدا سینا محجوب از اونجا این برده پست و مقام دنیا و پول اصلا ارتباطی با مسائل معنوی ندار اصلا یه پارچه موجوده مادی حیوانیست مثل حیوانات. ضروریت مادیر دوستر فقط با خدا و مسائل معلومی کاری نداره آدم اصلا اونجا نیست جاشت قدیت اصلا 1 سانتیتر که تقییت با لنیم اینا پای آدامن و همین درگیر نیم دارن برای اون مسائلی که گفته شد در بار این اراز اینای که گلشون کاری نیم کشم علاقه دارن این مسائل اونجا نیست نماز بکنه هی خیلی که موردهی فرصوی ها سفر نماز به این مسئله اینا باید باشید و باش که به اوجه برسید این حالی که با چوی مهر بزرد قدم بگیره گوش برد را میدن و بر ای که به کشته شدنشون شد. اینا از اونایی یعنی هنکون آلیفه این مرتبر خدا که به فکر خود و پود و زندگی و لذاعظ مادی نیستند دیگه آدم اگر تو فکر باشه به هیچ مست آزه که به ما تنها از این و موقعیت این مسائل فاکیه. این جمله اینه میخواد بگه یک کسی که دلش خدا میبینه دل و دیگه. کارش با دله. با گل نیست. منو زیاد نواز بخونه فایده نداره برای ببینه این اشمه علاقش پایینه. بالا راش نمیدن. محجوبه. هیچی نداره از بالا. اونایی که همه دادن به اونجا دلشون بالاست و پایین اونا راه دارن. گروسنگی بخوره گروسنگی بخوره نمیخورن بینم به سوری چی نخوره بازواری دره داره دلش حینه محجوره نبس لباس آری لباس نفوشه لباس آری آدم هایی که لباس ندارن بشه میان اویان لباس نداره لباس آری از لباس باشه قال من حب دنیا ذره اگر علاقه به دنیا داشته باشه فایده نداره بده. او ها بخاطر مردم به هم بگن این چه آدم فوبی است. اونجا باشه فایده نداره. بره. او دنیا بخواد در دنیا به ریاست برسه. علاقه به ریاست داشته باشه. این زعلان این که بیان کرده پس همه اعمالمون هیچ دیگه اعمال باطل نیست. از اونجا مه‌جوبی از اونجا محرومی نمیخواد بجویی از اونجا محروم آدم یعنی به معراجی باشه نمیدنم یه موقع هست که اینطور یا دوستاره اما به خاطر این کف نفس میکنه یعنی چون من میخوام برم بالا و بلش کنم اما اگه تونش بلش کنه کراش میدن اما نتونسه بلش کنه گیر کَد محروم ببلش بیاد مریونه بتونه بلش کنه حدسش نجات پیدا کنه راش میدن اما هی تو زاده خوردی گیره برید. حالا اگه باید ملکی بشید آقا. به کنده بشه دیگه. بیاد این این داده، بده به اون. عمل بس خود محبت داخله نتیجه اگر شما درست عمل انجام بدید، محبت جوش خواهد میشه. درست انجام ندی، جوش خراب. کلیات‌ها یعنی زیور دنیا جا <متحن> بله اونجا با من همسایه نمیشه باید که خدا هست بله می دیگه چون میراج آدم دیگه وجود اون داری که او هست ان زعن ان زعنا من <متحن> معلوم محبت دیگه محبتش خرج اینا شده ان دلش محبت کرده شده و علیک سلامی و رحمتی پیغمبر به هستن می فهمدن آخرشی خدا به پیغمبر کرد پیغمبر کردی آقا شد تمام کرده خدا حافظ ربی صلی